شروع کنیم؟ بله تمام این چیزی اون صوت مدیریتی چیزی هست بریزین یعنی چی؟ شما استفاده می‌کنین؟ یا من داشتم سرچ میکرم نه نفس ها مذروبه برای گوشی ها اینا اصلا یه سری چیزا بود بیزنس پلن و اینا بود آه. یا مثلا مستر پلن و اینا شما چیزی مذروبه بود پس من بپرسنم بهتون برده که خب شروع بکنیم ببینید پس لایه دوم از استراتژی ها در سند استراتژیک. استراتژیای تجاری های تجاری برنامهایی است که سازمان انتخاب میکنه تا تهدید رقابتی رو خنثی بکنه. ببین هر س... کسب کاری، هر شرکتی، تو هر صنعتی که داره تولید کالا و خدمات میکنه دوستان در یک محیط رقابتی قرار داره. و نگاه به رقیب یکی از مهمترین مواردیه که یه شب هم به جورات میتونم بگم مهمترین آمدی که سازمان واردش توجه کند. خب Business civil strategies means how to neutralize the competitor's strengths یعنی چگونه ما تهدید رقابتی رو میتونیم خونصاب کنیم تو این لایه ما برنامه برنامه‌هایی رو می‌نویسیم که سازمان به طوان تحدید رقابتی رو خونصاب کنیم بایدین یک چند تا مثال داشته باشیم یک چند تا بقول معروف شکل و مثال تا ببینیم شرکت‌های دیگه چجوری تحدید رقابتی رو دارن خونصاب می‌تونم فقط مثال، با مثال وارد بشیم <تصفيق> خوب والمارت والمارت یک برند معروف برنامه این که داره والمارت برای خونستان کردن تحدید رقابتی میگه we serve more than 138 million customers وای each week 138 میلیون مشتری داره هفتگی خب این برنامه والمارته والمارت برنامه هستش برای خونسا کردن تعدیدی رقابتی اینه که چجور؟ که ورلد واید باشه یعنی در کل دنیا در حقیقت مشتری داشته باشه این راستو میشه با کسان بازار ببین بحث بحث توسعه بازار نیست توسعه بازار کوپر لول استراتژیه علیه از سلام مشتری 138 میلیون هفتگی. هفتگی بله این یه عکسایی که من از کلسیسی گرفتم خب یک شاپینگ مال در کوالالامپور، دوستان که به مالزی رفتن با این شاپینگ مال آشنا هستن. درسته؟ نه. شما رفتی دیگه خانم. من ترسهادت با... نداشتم. آها، نداشتم. دوستان، شما را من مال آشنا هستیم ما یه تحقیق یکی دو روزه رو اون زمانه که دانشجو بودیم، دانش فوق لیسانس با دوستان انجام دادیم در کوالالامپور سنتر، خب کمپلکس سنتر که بهش میگن کلسیسی، این یکی از بزرگتره شاپینگ که در شرق آسیاس و خیلی جالبه که استراتژی هایی که این شاپین مال داره جهت خونسا کردن تحدید رقابتی بریم ببینیم چیه ببین اولین اعتقالی که هست توی این شاپین مال میگن feel good walking surfaces خب میگن کف شاپین مال انقدر باید تمیز و شفاف باشه که حس خیلی خوبی رو به مشتری بده وقتی داره راه میره چرا؟ چون مشتری زمان بیشتری رو تو شاپین مال صرف میکنه و که این حس خوبو بتونه داشته باشه Confusing floor plans معماری این شاپین مال پیچیده است شما وقتی که وارد شاپین مال میشین چجوری خارج بشی. پس زمان بیشتری رو در شاپین مال صرف میکنین بدانی؟ این خیلی ما حالا این تو بحث استراتژی بازاریابی ما همشه اینه میگیم, میگیم در, در رابطه با معماری شاپیمال ها معماریش باید پیچیده باشه complicated باشه که مشتری وقتی وارد میشه نفهمه چجوری خارج میشه بله same temperature and lighting دمای ثابت نور ثابت شما صبح با شب از نظر نور هیچ تفاوتی نمیکنه و دما هم یکسانه. اگر مشتری نوه صبح بیاده ده ساعت هم تو شاپی مال باشه بشه هفته بعد از او بازم فکر میکنه که همون نوه صبح ده حسوبه یعنی هیچ حس متفاوتی رو بهش نمیده خب؟ بله بریم سالا برند بعدی پپسی پپسی استراتژی داره که دارید میبینید انباب اقسام تیست های مختلف رو به بازار ارائه میکنه بله پپسی دایت دایت میده، پپسی لیمون، لیمون میده، پپسی بلو رو میده می خب؟ این یعنی که تیست های مختلف داره میده و از این طریق میاد و تهدید رقابتی رو خونسا میکنه میگه من تیست های مختلف رو به بازار میدم خب؟ من با شما که صحبت کردم که سفرانو اونو عمل چند سال پیش کیس سفرانو عمل کردم مدود ده سال گذشته در این میمارستان عمل کردم این بیمارستان اسمش هم سان بایی مدیکال سنتر بعض همان که عمل کرده برن باز هواس بود که تو محیط داره چی میگذره این بیمارستان واقعا یک هتل حفظه است خب؟ ولی یه استراتژی جالبی که اینا دارن به نوعی تحدید رقابتی رو خونسامه کنن فضایی رو به وجود آوردن خب تو بیمارستان که مشتری یا بیمار احساس نمیکنه تو بیمارستانه حس میکنه تو هتل بستری. خیلی مهمه میدونی چرا بیمارستان بده یا چرا همه ما نسبت به بیمارستان حس بدی داریم به خاطر اینکه دپرس میشیم تو بیمارستان حالا خدا نکنه ما هیچ کدوممون بریم بیمارستان شما برید بیمارستان ولی وقتی بیمارستان میری بعد از یک روز دو روز واقعا دیوونه کننده است و دوست داری بری خونه و خیلی هم پافشاری میکنی به دکتر که مرخصت بکنه ولی اینا فضای رو در بیمارستان خلق کردن که توی احساس میکنی در یک هتل 700 را و هی دوست داری بمونی چی کار مثلا، بر زاریم مثال، اتاقهاش این هتل. انواع و اقسام تابلها رو به دیوار زدن متوجه چه میدونم، میدیا کامنیکیشن یعنی وست به اینترنت، به ستلایت، ماهواره خب، پرستارهایی که استفاده میکنن از پرستارهای فوقلاد زیبا و خوش استفاده میکنن فوق این مهمانداران هواپیما متوجه سیستم سی آر ام فوق الاد قوی دارن مدریتی با مشتریان یعنی این وقت مریض تو بیمارستان بستاریه مدام نفرات سی آر ام میان و میگن شما مشکلی داری؟ مشکلی نداری؟ حالا راه نمایت میکنن میدونی؟ یه جورایی روانشناسی میکنن موقع غذا نهار یا شام به شما منو میدن میگن انتخاب کن حالا بر اساس شرایطی که داری یه ق نه، ده مدل غذا بهت آفر میدن که بیای انتخاب بکنی. حس خیلی خوبی رو برات به وجود میارن. موزیک خیلی لایکی رو تو بیمارستان میزنن در بعضی از بخشا که تو اصلا احساس نمیکنی توی بیمارستان هستی. اوکی؟ از اون طایما حیوته خالی می‌کنم. بله خب فوق العاده گرونه. ولی البته یه چیزی رو من بگم بیمه هاشون کامله. یعنی فول کاورج داره. خب بریم سراغ برند بعدی مکدونالدز مکدونالد یه استراتژی تجاری که داره با این سیب زمینی مشخصه مری کریسمس برای هر مناسبتی مکدونال میاد تغییر در شکل قساهاش میده اگر کریسمس سیب زمینش رو به این صورت در میاره استراتژی تجاری دیگه ای که مکدونالد داره گلوبالایزیشنه یعنی جهانی شدن مکدونالد نگه من همه جا شعبه دارم من جمله کره ما هم می خوام شعبه داشته <تصفيق> یعنی قبل نه، نرفته دوی ما جاز تبدیقاته تبدیقات مثلا عکس تو اونجا میزشتن میگونتیم من ما بله، مکدونال میگه من صبح، هفته صبح، هشته صبح، نوه صبح، ده، یازم برای هر ساعت یک منوی قضا داره مکدونال بیست و چهار ساعته کار میکنه خب؟ بله، استراتژی بعدی مکدونال که گفتم گ ولف میگه یعنی اینا از این طرف بیان تعهدات رقابتی رو خنسا میکنن طرقهای مختلف میگه وارانتی وارانتی و گارانتی من لایف گارانتی من لایف تایمه برای کل میدونی زمانه خب اصلا زمان نمیده برای گارانتیش یک سال دو سال سه سال یه چاغوه و منفور که بخری برو استفاده کن خب البته چاغوه به من ممکنه بالای 10 میلیون باشه هستی که تو خانهاش پس خانه آشپزخانه گذاشتن یک, یک یه خرده‌ای یا چاو بهمره خب ولی خب کیفیت بهمره فوق العاده بالاست بله استراتژی بعدی مال آودیئه آودی میگه موتور ماشین من بسیار بسیار قویه یه برند دیگه هست به نام سابوی سابوی برند آمریکایی در اکثر کشورهای دنیا هم شعبه داره اینم فاست بوده ولی استراتژی خیلی جالب داره یه استراتژی خیلی جالب داره برای تاسک تح... کردن تاکید رقابتی مشتری خودش ساندویچش رو انتخاب می‌کنه. المان‌های ساندویچش رو انتخاب میکنه, میکنه. میره پای کانتر، خب میگه آقا از این نون به من بده. این, به من بده. رو, این رو به من بده. اما خصم سوسیسا رو این خیارچی رو به من بده. مقدارش رو زیاد کن. این سس رو بده. مقدارش رو کم کن، زیاد کن. این طعمو بزن، کاهو بزار ممکنه یه دفعه یه ساندویچ رو شما خودت بسازی، خودت انتخاب کنی که قیمتش باشه هزار ممکنی یا ساندویژ رو خودت بسازی که قیمتش باشه ده هزار تومن، پنج هزار تومن حتی میتونی بگی ساندویچ یک چهارومه شو رو من بده، نصفی رو من بده، کامل به من بده. اصلا دو تا به من بده خب، و پولش هم ازت میگیرن اینو ما در بازار یاوی بهش میگیم Customization یعنی محصولاتش که بر اساس نیاز مشتری، حس مشتری، در حقیقت اتخاظ میکنی یعنی بله. به نوعی، بله. دستگاهی که در تصاویر میبینه طوری طراحی شده که بدونه ضربه بزنه به زرده ابتدا سفیده رو در ظرف جداگانه و بعد میتونه زرد رو از آن جدا کنید یه داستانی که کاربر تو تخم مرغ وجود داره اینه که شما زرد رو از باقول مر سفیدش به سختی میتونه جدا کنید با این دستگاه در واقع این کار به راحتی اتفاق میفته خلاقیت این میخواد خلاقیت رو بگو چرا با خلاقیت می تهتید رقابتی رو خنسا میکنید بله اشیا یک پرواز که یه ماه پیش هم سقوط کرد یکی دو ماه پیش دیگه از اندونزی میخواست بره سنگاپور من با این پرواز زیاد مسافرت کردم مهمانداران فوقلاد زیبایی داره این اولین آره فوقلاده یعنی سلکتیب اصلا شما چرا یه رفع موجود چه یه گردنش این <highly> AirAsia دقیقاً سلکتیولی مهمانداران انتخاب میکنه و مهمتر از اون AirAsia یه استراتژی داره میگه Everyone can fly همه میتونن پرواز کنن هزینه فوق بیلیتاش ارزونه. فوق فوقلاده ارزونه. من بیلیت میخواستم از سنگاپور بگیرم به هند با سنگاپور Airways بود دو هزار دلار سنگاپور با هر اشیا بود هزار دلار سنگاپور یعنی صد درصد تر برنامه‌ای که مال دارن مال سنگاپوره جاست این مال مالزیه مالزیه مال ولی برنامه مال تونی فرناندسه آمار. یه هندیه کل هوپای یه هندیه خب ولی استراتژی که دارن میدونید چیه حالا اینکه من گفتم مهمانداراش که فوق العاده زیبا جای خود باهنی استراتژیشونه. خب یه برنامه دیگه که اینا دارن که قیمت بلیطشون فوق‌العاده ارزونه. اولا فرست کلاس و بیزینس ندارن. همش کانامیه. خب؟ و مهمتر از اون، چترین تو هواپیما ندارن. یعنی شما اگر هر چیزی رو که بخواد به مهماندار میگید برات میاره و پولش هم اجازه میگیره. مثل رستوران که منو ریت میذارم میگم اینو میخوام، غذا برات میاره. چی دارن، غذا نمی‌شه، چی. ولی پولش ازت میگیره تو خود هواپیما. خب پس کترینگش فنجانی و از این طریق قیمت رو کاهش دادن قیمت محصول تمام شده رو کاهش دادن اینو در حقیقت هم یه ستراتجیه برای خونص کردن تهدید رقابتی بریم سراغ فیسبوک شرکت فیسبوک با عنوان بهترین محل برای کار کردن در جهان انتخاب می‌شوند گاه یوقات شما با محل کارتون می‌تونه تهدید رقابتی رو خونسا دادن خیلی محنان دوست عزی یعنی محل کارتو تو بکنی که همه دوست داشته باشن توی سازمان شما کار بکنن یعنی لویالتی استاف تو ببری بالا وفاداری پرسنل تو سازمان ببری بالا و از این طریق بیا تهدید رقابتی رو خنسا بکنید بعد محیط کار فیسبوک باعث در این محیط کار خب خلاقیت هم افزایش پیدا میکنه شادمانی هم برای پرسنل میره بالا جالبه خیلی جالبه یا مثلا به این صورت به این صورت و و و, و, و البته آخر ببینید انبواب اقسام در حقیقت تغذیه یا اغذیه رو برای پرسنلشون گذاشتن که پرسنلشون سوپرمارکت عین سوپرمارکت فیسبوک فیسبوک عین سوپرمارکت میونه البته من این نکته رو بگم اکثر شرکت های آمریکا این یعنی تو شرکت های آمریکا خود امریکا که کار بکنه اصلا محدودیتی برای پرسونل نیست <تصفح> مثلا انواع و اقسام میبه ها رو میذارن آب میبه ها رو میذارن یه حسی که بعضا ممکنه وجود داشته باشه اینجور موارد حزینه نیست اینجور موارد حزینه نیست یعنی اگه شما برای پرسونل جان؟ نه بحث فانی نیست اگه تو برای پرسونل آب میوه میوه میدهد فول چای نصفه انواع و اقسام بذاریم این, این افضاش حزینه نیست ا می‌دونی بعضی از مدل‌ها فکر می‌کنه این باعث بالا رفتن هزینه نمیشه نه این باعث کاهش هزینه نمیشه، میدونی چرا چون راندمان نیروی مینو بالا بهره‌وریش بهره‌وری نیروی مینو بالا بله، فیسبوک فیسبوک و دوباره فیسبوک و برو سراغ برند خیلی معروف گوگل یک گرافیست کُره‌ای دارد که حرکت خلاقانه‌ای که حرکت خلاقانه لوگوی گوگل رو محبوب تمام ملل کرده است مناسبت های مختلف، سنتی، فرهنگی، ورزشی یا اخبار مهمه امی گای باشه که لوگای محبوب گوگل تغییر چهره بدهد گوگل با لوگوش اومده تقدید رو رو خونستا کرد چه سرچ انژینه، گوگل زیاد فرق با یاهو نکنه فرق میکنه کنه؟ آیا آیتر من؟ چرا فرق نمی چه فرق نمی این تلت سایت هایی که توش ایندکساش بیشتره سرعتش بیشتره، حالا یاهو جزا ده تا برفتر هم نیست حالا، ولی گوگل با این برندش، با این لوگوش خودش رو متمایز کرده این لوگو گوگل بله روز ملی ترکیه 2009 یا پنجام سالگرد خرم آستریکس 2009 یا نوروز ایرانی یعنی ببین برای تمام جوامع و ملل اومده لوگوش رو کرده خب روز معلم، سال روز اختراع بارکود بله، سال روز تولد گاندی، سال روز تولد یا روز ملی عربستان، روز سال روز میلاد اچ اچ بلز، یا اولین روز بازگشایی مدارس، پدیده ناشناخته و علا آخر میبینید انواع و اقسام شکلهایی که شما در گوگل دارید میبینید گوگل از این تاریخ اومده دقیق تهدید رقابتی رو خنسا کرده اوکی؟ و اپل به همین صورت روش های دیگه ای داره برای خونسا کردن تحدید رقابتی بله باز خود اپل محیط کارش به عنوان یک استراتژی برای خونسا کردن تهدید رقابتی مد نظر قرار گرفته شده و خود استیف جابز به عنوان یک برنامه شان من بگم مثلا شخص استیف جابز یک استراتژی تجاری برای اپل خود استیو جابز که خود استیو جابز باعث شده برند اپل از این رو به اون رو بشه و همین الانم هم همه ریسپکت زیادی برای استیو جابز قائلن مثل گاندی مثلا مورد. و به خاطر همینه که برند اپل الان نمبر 1ه ران یعنی شماره یکه تو کل دنیا ارزش برندش و بله نکات دیگه که شما دارید بینید خود لویالتی که در حقیقت مشتریان به اپل دارن این باعث شده که در حقیقت اپل، باشه نمبر وان، محصولات اپل و آخر خب <تصالح> از این اکسا چی متبطه شدید؟ میتونید به من میدید؟ تلقیت <تصالح> تمایز تمایز کاتلر یه جمله ای رو در کتاب بازاریابی داره میگه ایدر دیفرنشیشن او دای یا تمایز یا مرک و تمامی این شرکت ها به شکل و روش و متدی خودشون سعی کردن متمایز کن فیلیپ مایکل پورتر مارکل پورتر میگهlementmentationشن of Business level استراتژی اجرای استراتژی های تجار اینizationشن در سازمان ها کو important بسیار بسیار بسیار مهمه. And we have ways ما پنج راه داریم ما پنج راه داریم برای خنثی کردن تهدید رقابتی و اجرای استراتژی تجاری در سازمان ها مایکل پورتر میگه مايكل پورتر یه مدلی داره برای استراتژی تجاری داره کم کم وارد بحث استراتژی تجاری میشیم مایکل پورتر مایکل پورتر میگه ما پنج راه داریم خب، برای اینکه تهدید رقابتی رو خونساب کنیم خب، که آقای مایکل پورتر مدلی رو معرفی کرده به نام مدل پورتر مدل رقابتی پورتر خب مدل رقابتی پورتر دوستان چی میگه؟ مدل رقابتی پورتر چی میگه؟ میگه یه روش برای خونسار کردن تهدید رقابتی دیفرنشیشنه یعنی تمایز تمایز یعنی چی؟ پورتر میگه یه راه برای خانسفار کردن تقدید را راحتی تمایزه تمایز یعنی چی؟ یعنی فعالیت یا فعالیت هایی شما در سازمانتون داشته باشید خب که شما را از رقیبتون متمایز کنه حالا این فعالیت خلاقیت این فعالیت میتونه بسته بندیت باشه میتونه مدید کارت باشه میتونه نوع طبیقاتت باشه یا هر چیز دیگه خب مثال بزنیم مثال های که دیدید تا الان خب پررتت میگه روش دوم برای خوصال کردن تهدید رقابتی کاست leadership leader. رهبری هزینه رهبری هزینه یعنی چی؟ پررتت میگه یه راه برای خوصال کردن تهدید رقابتی اینه که، شما قیمت محصول در مقایسه با رقیب پایین باشه و بتونه تهدید رقابتی رو خونسا کنید. مثل ارقیشیا خب؟ روش سوم که پورتر اشاره میکنه کنه رقیب روش دیگری که وجود داره برای خونسا کردن تهدید رقابتی فاکس ڈیفرنشی ایشن فاکس تمایز کانونی فوکس دیفرنشییشن تمایز کانونی پرده یه راه دیگهی که برای خونسای کردن تهدید رقابتی وجود داره اینه که شما گروه خاصی از مشتریان متمرکز میشید متوجه هستید و انواع و اقسام تمایزها رو برای اینها به وجود میارید و از این طریق در حقیقت تهدید رقابتی رو خونسا میکنید مثل پرشه پورشه رو گروه خاصی از مشتریان متمرکز پولدارها مثل فراری مثل لامبورگینی خب و رو داره برای گروه خاصی از مشتریان خلق میکنه اینم یه روشه برای خنسا کردن تهدید رقابتی یا روش که شما بتونید تو یک محیط رقابتی دوون بیارید خب استراتژی چهارم ر فوکاس کاس رهبری حزینه کانونی خب فوکس کاس استراتژی. استراتیجی رهبری حزینه کانونی پرته میگه روش چارم رو برای خونسا کردن تحدید رقابتی اینه شما برای گروه خاصی از مشتریان متوجه است قیمت محصول تو بیاری پایین برای گروه خاصی از مشتریان قیمت محصولتو بیاری پایین من از آنکه دانشکار لیمکوکوینگ بودم یه گروه دانشجو بود به نام فلدا دانشجیان فلدا فلدا students خب اینا دانشجیان فقیر بودن یا به عبارت دانشجوان که بذات لازم برای تحصیلو نداشتن یا از نظر توان مالی ضعیف بودن اینجوری من بگم فیل میشدن جا میشدن فیل میشدن چی میشدن فیل میشدن دیگه فیل میگن فلد میشدن نه نه نه بحث اون نیست که فلد شدن اینا بحث این که این دانشگاه خب دانشگاه برای اینا می که برنامه جدایی می زاش. خب؟, خب، با... یعنی ذکاوتیش رو داشتن و دا طبان مالشون پایین بود دیگه توان مالشون بالا نبود اگر شهریه یک دوری مثلاً ام بی ای بود ده هزار دلار، برای اینا بود دو هزار دلار یا هزار دولار. خب هزار دلار رو از اینا میگرفتم ولی خب یه سری اتفاقاتی هم میافتاد دیگه مثلا دورشون به زبان مالایی برگزار میشد نه به زبان انگلیسی متوجه هستید از اساتید ارزان تری استفاده میکنن نه از اساتید گران قیمت خب ولی خب بالاخره این باعث میشه که وقتی شما رو یه گروه دیگه‌ای از مشتریانم متمرکز میشی باعث میشه برندت ایمپروف بشه یعنی بتونی تو باز یعنی آقا من گروهای مختلف مشتریانا دارم کاور میکنم خود هواپیمایی ها،, هوا ها، تمام ها دقت بکنید فوکس دیفرنسیییشن رو دارن فوکس کاست دیارشیپ هم دارن فوکس دیفرنسیییشنشون مثل فرست کلاس و بیزینس کلاسه خب، فوکس کاست دیارشیپشون مثل اکانومی کلاسه یعنی در حقیقت برای همه اکانومی کلاس مال کی مال آقا سکاره توانه مالیش این نیست که بخواد بره فرست کلاس یا بیزینس کلاس گذاشته درسته و راه پنجم برای خونسا کردن تحدید رقابتی <تصفيق> آی پورتر میگه راه پنجم برای خونسار کردن تعداد رقابتی اینترجرشن استراتژی یعنی استراتژی تلفیقی متوجه است یعنی تلفیقی از این ها رو یا ترکیبی از این ها رو شما انتخاب میکنید برای اینکه بتونید تعداد رقابتی رو خونسار بکنید درسته یعنی یه راه دیگه برای خونسار کردن تعداد رقابتی اینه که تلفیقی از این ها رو اتخاذ بکنید تا بتونید تعداد رقابتی رو خود سابو خب سوالی هست؟ یعنی شما برای گروه خاصی از مشتریان میای و محصولات ازیم. و تدماتتو تو مایز می یکی هم همون میشه دیگه، اونم گروه خاص دیگه, دیگه. کودک اونا همینه، اونا برای کوره راه کاست لیدرشی برای کوره خاصی از مشتریان شما قیمتون می‌آمدی پایی. آها. آه فوکس آه دیفراینشین برای کوره خاصی از مشتریان شما تغییر زیادی می‌کرد. خب، یک کنید این فوکس کاست لیدرشی باعث نمیشه مشتریا به این سم ورج بشن مشتری دیگه یعنی چی یعنی اینکه خب ما علاقمند میشیم بریم تو اون گروه قرار بگیریم برای اینکه قیمت خب. ارزان‌تر بشه ببخشید سی پی وی کمتری رو دریافت می‌کنه کاستر پرسیو ولیو کمتری رو دریافت می‌کنه ارزش کمتری رو میگیرید شما تو ما میتونی فرست کلاس بگیرید میتونی اکانومی کلاس بگیرید یعنی چی به معنای ایام ای دارم میرم مالزی زید خب من اکانمه کلاس گرفتم قطر سه میلیون فرست کلاس 16 میلیون بود خب شما اگر مثلا برای خب اون که 18 میلیونه به تو کابین میده یعنی لازم است که تو صندلی بشینی. یعنی یک کابین جداست تخت داری میتونی دوش داره دوش بگیری چند میدونم استراحت کنین برای ساعت؟, ساعت, دیگه؟ ساعت؟, ساعت؟ برای؟ هشت ساعت 9 ساعت. ساعت نو ساعت خیلی خوبه بale، بله. حالا من آکونومی کلاس گرفتم چونم جای تنگ، بالاخره همه تو هم نشستن. می‌تونه بیزینس کلاس، بیزینس کلاسش 15 میلیون، بود، 14 میلیون. bale. چرا پول بدی آش میخورد. آره دیگه، بقول ما هرچقدر پول بری آش می‌خوره، پولم نریه. یعنی ما وقتی میگه حتی با پول میدی آش میخوری علمیش میگه سی پی وی دریافت، کاستر پرسیو والیو ارزش بیشتری رو خب، دقت کنید. اینجا باز بکنم. سود یعنی چی سود چجور ما حاسبه سود مساویس با درآمد من های حزینه، خیلی ساده ها؟ دو تا نگرش اینجا وجود داره دو تا نگرش وجود داره بعضی از شرکت نگرش اول و نگارش شماره 1 بعضی از شرکت‌ها متوجه هستن من چی دارم میگم؟ رو درآمدشون متمرکزن، رو هزینه اصلا متمرکز نیستن و سعی می‌کنن درآمد درآمد به برابر بونه. تامل تامل می‌گیه چون درآمد آفره، تمام توان و کلاششون می رو میذارن رو درآمد درامت ها ببرن بالا، کاری با حزینه ندارن رو مدیریت حزینه و از سود و افزایش میدن خب؟ نگارش دو نگرش دوبه خب؟ این خیلی مهمه ها سود مساویس با درامت منهای حزینه یا شرکت‌ها تا نگارش دوم اتخاذ می‌کنن هزینه‌ها رو مدیریت می‌کنن و هزینه رو کاهش میدن و از این طریق سودشون رو... یعنی یا درآمد رو دارن متوجه و سعی کنن این هزینه‌ها رو کنترل بکنن و از این طریق اون حاشیه سودشون رو تحت کنترل در بیارن یا به عبارتی سودشون رو در سیکس سایت نگه دارن خودم. اوکی خب نگارش نگارش سوم خب نگارش سوم بعضی از شرکت‌ها میگن سود مساوی با درآمد منهای هزینه بعضی از شرکت‌ها استراتژیشون اینه درآمد و دنبال افزایششن و هزینه هم دنبال کاهش کاهششن جفتش رو با هم می‌خوان داشته باشن این نگارش سومه خب جاجا چنای اول اولو بهش میگن تمایز درسته یا تمایز کانونی یعنی زمانی که شما متمرکزی فقط رو درآمد استراتژی که میخواد پیاده سازه کنید سازمان این تمایزه خب دومی که فقط شما متمرکز هستی که فقط شما متمرکز هستی رو خزینه رو بهش میگن رهبری هزینه، خوب یا رهبری هزینه کانونی متوجه عظر من هستیم یا رهبری هزینه قانونی اوکی سومی چیه؟ ممی دقیقا استراتژی تلفیقه سومی تلفیقی ببینید، با این سه نگرش من پنج راه پورتر خدمت رو خدمتون گفتم، درسته؟ پورتر میگه آقا، یا نگرش یک برو جلو استراتژی تمایز، تمایز قانونی باشه برای که به تو تدری رو خونسا کنیم یا نگرش دو رو برو جلو رو حزینات متمرکز بشو یا نگرش سه رو برو جلو تلفیقی جهت اطلاعات تون یک و نگرش دو رو بهش میگن استراتوژی اقیانوس قرمز قرمز و نگرش سه رو که شما میخواه از آب بیر کره بگیرید. اگر هم درامدت هم هزینت پایی اینه هم بود درامدت متمرکزی هم با هزینه متمرکزی اینو بهش میگن استراتوژی اقیانوس آبی درست دوستان حالا بحثی که اینجا وجود داره چو وجود داره؟ کدومش بهتر تر به اعتقاد شما؟ آویه منوستر. ولی خیلی سخت پیاده سازیش. سخت تر. فوق بالا ده سخت پیاده سازیش. خیلی. معمولا شرکت ها استراتژیشو استراتژی اقیانوس قرمز ولی اگر شما بخواید در یک محیط رقابتی حالت ثبات داشته باشید، حالت توسعه و بهبود داشته باشید. به دهم بیاریید باید از سمت استراتژی اقیانوس قرمز حرکت کنید به سمت استراتژی اواقیانوس آبی یعنی استراتژی این بعد باشه بری به سمت اقیانوس آبی از قرمز بری به سمت اقیانوس آبی متوجه منظ من میشید حالا من از شما چند تا سوال دارم. از یک سوال دارم بعد بحث با هم باز می سوال یک و مهمترین سوال درآمد چجوری میشه بود بالا و هزینه رو چجوری میشه آورد پایین؟ این سواله که شما باید بپرسید. هزینه‌رو که ما خیلی از کاهش هزینه صحبت می‌کنیم درسته؟ ولی کاهش هزینه یعنی چی؟ من تو چی باید دست بزaram؟ چی باشه؟ اصلا ببین ما خیلی جنرال و کلی داریم صحبت می‌کنیم. این مدیریت حزینه یه جمعه خیلی کامنیه که همه در رابطه باهاش صحبت میکنن ولی واقعا من مدیریت حزینه رو چجوری باید بیارم پایین؟ حزینه ها پایین اومدنه نیست، نامتش میشه، صرف دیگه صرف که نمیشه، حزینه هستش. حزینه که بر ولی مدیریت بتونی بکنیم مثلا شما توی تو باید درامت از نه هزینه هم مهمه آیه چیز آه. حزینه هم؟ یعنیش حزینه رو پایی نمیشه مثلا یه حزینه بگو شما تو سازمایت آذینه مثلا نشون نده نشون ائتلاف انرژی نند استاد قاسم براست هزینه مانند بود و آسان میشه تو سازمان آذینه روی شما نمیتونید نهایتان نه ما دنبال صفر کردنش هستیم دنبال کاهششیم دنبال مدیریت کردنش هستیم رو چه فعالیته بعد دست بزنید تا حزینه کاهش پیدا کنه؟ رو چه فعالیته بعد دست بزنید درآمد بره بالا؟ اینو به من, من بالا بره درام. ببین خیلی کلی نمیخوام با هم صحبت کنم. بزنی, بزنی تو خال. ببین مرکز نماد بکنید. ثابت اون خزینه‌مون مقابل حazine های متغیر همیشه هستش یعنی مثلا اجاره و استهلاک و بیمه رو باید همیشه بدی نمیتونی کاهش بدی نمیتونی کاری براش انجام بدی ولی هزینه گاز و برق تو مثلا میتونی کاهش بدی مثلا امیت امیت چه هزینه‌ای هست... نمیشه کاهش داشته؟ خب هزینه های مثلا اجاره رو چی من بیمه و... رو ثابته البته آره دیگه این آره چاره نمیخون کاهش بدی خب اجاره همیشه هجی. باید بدی خب ولی مدیریتش کنی کار نمیخوام میگم صفرش کنه ولی میتونی مدیریتش کنی کاهش بدی ولی چی پوینت تر خب بعد مثلا تنسینی، مثلا بعد با گازا اینا رو می‌چونی مثلا توی که بکار که ریاد بده که صرف اژی اول خودت باید رایت کنی، بعد بذاری اونو هم رایت کنن و درامد وقت وقتی توریدو فروش بله والا درامدت هم میره والا دیگه اون منظرم اینی که تمرکز روی هزینه ها اختباهه تمرکز ما باید روی درامد یعنی شما میگه استراتیجه اوگیانس قرمز. آبی میگه هم رو ببر بالا هم ازینتت مدیریت کن خب سودت خیلی بالا میره درسته خب اون تمرکزی که این جفتش روش تمرکز بکن سودت میره بالاتر هم یعنی از آب داری کله میگه هم درآمدت میبره بالا هم ازینتت میاره پایین شما بحثی که دارین میگید استراتژی اوناس قرمزه ولی من میگم بعد حرکت که به سمت آبی حال بگذاریم به من عملیاتی بگید خب که آقا گوش با. به من عملیاتی بگید ما میگیم درآمد مس مصاب... درآمد بنهای مصاب... خزینه مساوی با سود تو حسابداری هم خوندید همیشه روش بحث میکنیم بابا رو چه فعالیتی رو سازمان باید دست گذاش که مثلا هزینه بیاد پایین اینو به من بگید تو مثال بگید آره مثلا شما توی یه کافهونه حالا تولیده مثلا حالا هر چیزی اوکی من قبول ندارم نشد حالا ولی تو با شرکته همنو نفت کار میکنید میری یه تو طولانی مدت انجام بشه میری یه دونه اصلا ترهبی میکاری توی طولان مدت حضینهات کم میشه بیمسنم با ترهبی خود ترهبی استاد بمسیم با تنسیم استاد okay. مثلا با مثلا... کار کنم اصلا این پروشه ای را استفاده می‌کنی. از چه استفاده میکنیم؟ این پروشه اینکه بهشون مثلا دست بازو تشویلی میدی که هر چقدر بیشتر کارم هم راندمان می میره والا هم درامده اون بیشتر میشه من یک اشتباه بزرگی که در زندگیم کردم همین که و بزرگترین اشتباه زندگیم شاید میشه با اشتباه کاری این بود که دو سال پیش من حقوق پرسونل رو وحشتناک افزایش دادم خب؟ یعنی دو سال پیش بعد از اید اومدم یه مجوزهای های اولی هم از سید مدیر گرفتم جاستیفیکیشنش هم این بود که آقا ما نیروهامون باید لویال بشن به سازمان خب وفادار به سازمان بشن حقوقامون پایینه ما حقوق رو ببریم بالا اینا دق دقه فکری دیگه نداشته باشن خب بشنسان کار من حقوق خدمت شما رسی هزار تومن رو کردم دو میلیون تومن دو پیش حقوق یه ملیون رو کردیم سه ملیون. حالا حالا اصلا من با این اشتباه ترین کاری بود که من در زندگی انجام دادم میدونی چرا وقتی اوقاره افزایش دادی همه خوشحال و خندون مثلا یه میلیون شده دو میلیون سه میلیون ولی فقط یک, یک ماه بعد از یک ماه همه چی نرمال شد و بدتر از اون الان کارگر داخل خط متوجهی تو سیستم ما مثلا اپراتور داخل خطر کلا مثلا فرض کن تو هش کردم زندگی میکنی سیستمم سیستم یعنی لو پروفایله دیگه حالا دهامل از اینهای هم آن تو زندگیش نداره داره دو دو خورده میلیون از ما پول میگیره خب این پیش خودش میگه آها چه تلاش کنم چه تلاش نکنم این دو دو خورده یه هست اثرم هم زیاده برای چی زیاد انرژی بذارم برای چی خیلی تلاش بکنم میدونه اینی عملاً این افزایش حقوق باعث کاهش راندمان در سیستم من شده. حالا ببینید از مصراحت تشخیص دادیم که چند نفر مینداختیم بیرون خیلیده. که اینا چرچ می‌گیرن. راهی که باید می‌رفتیم به سمتش حالا من اینا رو همه رو توضیح می‌دم امروز بهتون. دقیقاً ما اسمش رو می‌ذاریم کاهش هزینه. این کاهش هزینه است. این کاهش هزینه است. ما باید نگرش شما نگرش بود. ما نگرشمون متاسفانه نگرش objektیو بود ما تو منابع انسانی یه نگرش کتیو داریم, داریم نگرش objektیو داریم نگرش سکتیو چیه؟ انداریم. نگرش objektیو چیه؟ نگرش objektیو اینا چاقا تو حقوق میگیریم نیرو انسانی کار میکنه در دنبال حقوق میگییم میشه نگش یه شهر زارره داری داره در درلببال نگرش سابژکتیو چیه؟ میگه حقوق به علاوه کمیسیون. این نگرش نگریش خب؟ اونای که دید بازاری دارن میان چهجوری حقوقو به پرسونل میدن؟ میگن آقا همه حقوق وزارت کار خب؟ همه ابو مدیرامه تو بگیر تو پایین ترین رده همه حقوق وزارت کار ولی آقای مدیرامه من بعد تو 5 میلیون بدم درسته؟ شال سقفممو پای وزارت کارته 4 میلیون بقیه رو حالا بر اساس صدایی که مثلا ما میبندیم مثلا میگیم ما تو 10 درصد از سود و خالص شرکت میگیری اوکی آقای مدیر بازاریبی تو سه درصد از سود خالص شرکت بگیریم آقای مدیر مالی تو دو درصد از سود خالص شرکت میتونی بگیری یعنی چی یعنی تو راندمال سازمانت میبری بالا که به قول ببر بالا که درصد خودش افزایش بده کن الان مشکلی که من تو سیستم دارم من الان مدار رو پرسونل رو فشار میزارم آقا این چی شد؟ چی شد؟ چی که دلش در سوخته. دلش در ولی وقتی خودش، ببینید نگرهش سابژکتیب یعنی چی؟ یعنی شما خودتون سحیم هستید در سود شرکت یعنی بیایید به شفی روشی پرسونل رو در سود شرکت سعی کنید اصلا تو دیده دست تو چ حالا وارا پرداخ کنا سختم براش نذار اگه طرف حقش 100 میلیون تومانو تو 100 میلیون تومن بهش بدی ببین چجوری برات میتوره ببین وقت چجوری برات میذاره یعنی مشخصه سهام بدیم منظور نه نشون سود شرکت سهیمه که ثبت نمیکنید چرا